اللهم الرحمن الرحيم رب العالمين والسلام على سيدنا محمد حکمی مفهومی موضوعی و مستقیم مشهوره در بین فقها و سوری اینی این که شبه ها تقسیم میشه به دو قسم شبه هی و شبه هی و همه شبه هات رو بردیگردونن به شبه هات حکمیه کمان که همه شباهات مستاغیت رو برمیگرد من به شباهات موضوعیه ولی واقعیت فرقی حاکمه بین که چهار تا شبه هم نه دو تا شباهات مفتومیه به شباهات حکمیه برمیگرده کمان که شباهات مستاغیه هیچ به شباهات موضوعیه نده تعریف شبهه حکومیه اینه که اون چکر کشف این شبهه و شک مبورد به شعره باشه و شعره باید این شک رو کنه این شبههات رو میگن شبههات حکمیه، شبههات موضوعیه شبههاتیه که شبهه آرزه در این موارد به خاطره تردد باسته های و این باسته های در هفت قسم تقسیم میشن یعنی تردد در باسته های منجر به شبهات موضوعیه میشن و قبل از این این نکته لازمه بدونیم که احکام اگه تقسیم میشه و احکام ذاتیه و احکام انوانیه در احکام ذاتیه ما شباهات موضوعی نداریم از چون مفتولینی که موضوعات محدده و از نظر شرعی مشخصه لذا شباه موضوعی نداریم اگر شبهه موضوعی مطرحه در احکام متغیره و در موضوعات متغیر و این شبه که در شبهات موضوعی مدفعه به خاطر تردد در واسطه های است. هست این خیلی از برس های مهمه اگر کسی بفلت از این برس بکنه در استحصال نظریات فقهی به هیچ نتیجه یه این اگر بنا باشه، ما به همین تعاریف سوریه اکتفا کنیم، نتیجه به دست ما نبیاند ما بیانم بگیم شبهه حکمیه یعنی در مورد اجمال نست یا تعارض نسته این همسال این اینا شبهات حکمیه نیستن یا در شبهات موضوعیه بیانم بگیم اشتباه مورد خارجیه دو تا با هم اشتباه شدن این خیلی سوریه پیش خواه افتاده و منحرف کننده از آنه ذهنهای روشتونگی این انحراف پیدا میکنه به یه چیز دیگه از اون حقیقتی که در این بحث های موضوعی هست میمونه شباهی موضوعیه یعنی موضوع مشتبهه در چه مواردی موضوع مشتبهه وقتی شعاره حکم موضوع رو تهدید نکرده باشه شعاره اگر موضوع رو محددش کنه ما دیگه شباهی موضوعیه نداریم نزا این منتقل میشه به خصوص احکام متغیر که موضوعات متغیر دارن وقتی احکام متغیر باشن به طبع تغییر موضوعاتشون چرا موضوعات متقیره و مشتبه برای ما به خاطر تردد در واسطهای اروزیه ما واسطهای اروزیه معلوم نیست چرا اینطوریه تردد در واسطهای اروزیه هفت قسمه یعنی در تمام فقر شما یک تبرقی اگه بخوایید بکنید که اولاون فکری یا سیر علمی درش داشته باشید معلومه که تردد در راست های روزیه که مبدع پیدایش های شهر متغیره اینا به یکی از این هفت قسمت میگرده قسم اول اینه که ام مردد بین حدوث و بقا یعنی واسطه اروزیه آیا حدوثش مهمه یا بقاش مهمه یعنی ملاد حدوثش یا بقاش در مثال می در سرقت حدوث حدوث سرقت مبدن حکم و حد یا بقا سرقت حدومش حالا این معلومه ولی در خیلی از موارد معلوم نیست ادالت حدوثیه یا ادالت بقاییه پس ام مدار بین حدوث و بقاست ما چون تشخیص نمیدیم واسطه ای اروزیه مردد شده واسطه ای اروزیه مردد باشه شبه موضوعیه داریم پس جمیع شبهات موضوعیه برگشتشون به اینه که موضوع مشتبه و چرا مردده؟ چون واسطهای و داره الخمر و حرام ما یقین داریم به اینکه یک واسطه ای داره واسطه اش اسکار. این این ازکارهای حدوثش این حرمته یا بقایش از خیلی داریم که باید به یکی از این انهای سبعه حل بشه اگه ما نتونیم برگردونیم به این چیزها فقه ما فرسخها ها فاصله پیدا می با فقه فنی ازا به نتیجه‌ای نتیجه که خودمون می‌خوایم نمی‌رسیم این یک مورد از آن هفت مورد که امر مردد بین حدوث و بباست دوم امر مردد بین فعلیت و قومه است آیا این واسطه روزیه باید به فعلیت رسیده باشه یا بالقوه‌ش هم کافیه <coughs> مثلا در اَکرم العلما علم بالقوه کافی برای اکرام هم در مسیر علم وجوب کم این شخص ولی در قلد العالم علم به فعلیت رسیده باشه بین فعلیت و بالقوه قوه و فعیلیت تردده نیزا ما داریم چی بگیم حکم آدم با قلد العالم فرقشون چیه فرقشون در قوه و فعیل سپوم <تصفيق> یقینا یقینا مناسبات سنجیده میشه چون احلاما تقییرم بعد مناسبات در جمعی افتان متوجه راه داره سفم دا سفم بین مبدع و مشتق ما چه را شک داریم به خاطر اینکه ما مرغوزه یا مشتق مرغوزه در زبه شرعی آیا هدت که مبدع مرغوزه هر چیز تیزی یا نه مشتب مرحوزه یعنی شیع خاصی از حدت که آهن باشه حدید مهمه کدومشه؟ اختلافیه 1200 سال اختلافش حل نشد حالا اخیرا خیلی ها جرعت پیدا کردن میگن هر چیز تیزی بیردان فقها ها, ها بر حدیده نه بر حدت خب اینو ما بخوایم بتونیم نظر بدیم رو باید بدونیم مبدعشو چطور دوره به دست بیاریم ما به چه معیاری میگی هدت و به چه معیاری میگی حدید این رو باید بحث کنیم اصولا طول می که چینا بعد خب بحث های اصولی همین غیر در بحثی نداریم ما که غیر از این ها بگیم یا بخونیم ازا با صبر و تعمل آقاین اینا رو پیگیری کنم به همین نهمی که داریم میگیم که راه سوم تردد بین مبدع و مشتب بعده و بعضی اون، نه این مصادر اون در اولی صدوبیه صدور سرقت ولی اینجا حلولیه صدور نیست آهن یا چیز تیز چیزی از سادر نشده اینا مصادر مسادر حلولی نه. نه. نه اون حدوث و ببا در فعلیه که از ما شده نسبت به صدوره ولی این حلولیه شی یک صفتی داره اون صفتش در چه حدی آیا مبدع اون صفت مدروزه یا مشتق از اون صفت منحوزه اینه فرق داره فرهای جوهری هم داره چهارم اینه که تردده در واسطه های اروزیه به خاطر تردده در معرفیت و موضوعیت چیزی معرفیت داره یا موضوعیت داره ما نمیدونیم معرفیت داره یا موضوعیت داره در واسطه اروزیه شک داریم در خیلی از موارد که علم لحاظ شده در لسان ادله ما نمیدونیم علم موضوعیت داره یا معرفیت داره یا خیلی از اناوینه دیگه عکس فهم ها آیا این موضوعیت داره جنوز یا معرفیت داره به یک نحلی ما همه مرددیم نمیدونیم این معرفه یا موضوع، پدش موضوعیت داره یا به یک ذاتیه علاوه کل ما مرددیم و میگن شبهه موضوعیه. پنجم تردد بین تردد بین تریقیت و مشیریت تردد بین تریقیت و مشیریت بعضی از عناوین مشیرم یعنی هیچ خاصیت نداره مشیر محض به دیگه بگیریم اکلمه حاضر جالس جلوس مشیره خاصیت خاصی نداره. ولی بعضی از موارد طریقیت داره یعنی مشیر محض نیست این طریق به یک واقعیه اون واقع باید حناز بشه لذا عناوین طریقی زنگین از از عناوین موضوعیه عناوین طریقی میگم باید به واقعه برس ولی انابین مشیر نمیگه به واقع برسی واقع مهم نیست همین عنوان ظاهری مهم این شخص رو افرام کن هر هرگی باشه. ولی اگر جلوس رو ما یک عنوان طریقی بدونیم طریق به واقع وای باشه واقعی در خیلی از مقالات بحث میشه که مثلا قاعده فراغ آه دیلات و اینها به نحوه مشیرند، به نحوه طریقند یا موضوعیت دارند اختلاف این طوری هم داره ما واقع رو در این موارد احراز بکنیم که در این صورت اگه مخالفتی شده باشه اصل عدم ایسانه ولی اگر مشیر باشه اصل ایسانه در مباحث ایضا ما قایل به ایزا بشیم یا قایل به ادم ایزا بشیم، تو به اینی که ما این رو مشیر بدونیم یا طریق بدونیم اگر طریق بدونیم موجزی نیست چون مفروض این مخالفت شده ولی اگر مشیر محض باشه موجزیه چون واقعی در کار نبوده ششم تردده در واسطه های اروزیه یه موضوع به خاطر تردیده در تقیید و ترکیبه آیا این موضوع مبایده یا مرکبه؟ مثلا در ضمن این قاعده زمان ید که میگن علب ید ما اخردت تا این علب یقینا این ید خارجی مدنظر نیست یعنی بسیطش مد نیست هیچ فقیه نگفته دست خارجی جارعه خاصی رو نگفتن این ید بساطتش مدده نظر نیست این یا باید مرکب باشه یا باید مقید باشه یعنی بگیم عللیت عادیه یعنی باقیده به با قدوان باشه یا نه دید عدوان رو نداره یدی که با عدم به رضایت مالک باشه اگر ما تحلیلمون این بود که این حدیث میخواد بگه علالیت العادیت معاخذت یعنی قید داره میشه موضوع مقید ولی اگر نفتیم نه علالیت معاخذت یعنی علالیت یعنی همین یدی که استیدا پیدا میکنه همراه با عدم رضایت مالک که سر از ترکیب در میاره قیدی نداره جز داره جزء اشیه عدم رضایت مالی جزا شک میکنیم این شخص زامن یا زامن نیست در این موارد میگیم استیلاک محرزه و اجدانه. این مال الان تهلیت شماست بعد اصل عدم رضایت مالک اثبات میشه که این مال باید برگرده به صاحبش و فرقی بین تقیید و ترکیب هست که فرق فقه حقوقی برش مترتبه اون وقت میبره ولی مرحوم نائمی قائل به این که در موارد تردد بین تقیید و ترکیب قاعده اینه که موضوعات شرعیه غالبا مرکبن تا مقید یعنی حمله بر ترکیب میشه تا تقیید حالا این ها حقیقت این ها چیه؟ حقیقتش لب فقه ناینیه یعنی اگر کسی معجون معلومات ناینی رو بخواد بگیره اسارهشو بگیره سر از همین بحثات در هم میاره چیزی غیر از این نیست لذا یک اشراف خیلی خیلی بالا میخواده نه این نیست که معلوم بگم و همه این رو حضمش کنم سختشون رکن فقه ناینیه یکی از ارکان عمده فقیبشون همین تقیید و ترکیبه که خیلی هم استفاده میکنه موضوعات رو مرکب بدونیم یا مقید بدونیم یا بسیط بدونیم خب یکی از چیزهای متداول در فقه و حصولیشونه خصوصا در مقام افتا لازم به انسان استهزار نسبت به این موانی داشته باشه و از اگه ما اینها رو نشنبیم مباحث نکنیم نخونیم هر داشتی می وقتی با کامپیوتر بزنیم یه تا نظریه بیاد و با چهارتا تا دلیل رو خودمون دیگه نظر نمی‌شیم اگر کسی بخواد به نظری برسه یقینا همه اینها رو باید تحلیلش کنه. این 6 قسم هفتم اگر تردد در واسطهای عروضیه هست حال اینا رو یکی یکی بررسی می‌کنیم ما. یکی یکی نارو بررسی می‌کنیم تا واضح بشه. هفتم تردد به خاطر بساطت و ترکیبه. بعضی از موضوعات ها بسیطه بعضی ها مرکبه ترکیر در مقابل تقییده که در شیشون گفتیم تارتا در مقابل بسیطه که در هفتمی داریم میداریم این هفت قسم تردید بین این مقوله ها که واقعا بین این مقوله های چار تردیده در زین هفت قسم اینها باعث میشه که واسطهای اروزیه ما معلوم نشه یعنی هر ترددی در واسطهای اروزیه برگشتش به یکی از این هفت تا تردیده اگر ما نوع اینها رو تشخیص دادیم و نوعش را تشخیص دادیم میتونیم اعمال بکنیم زود به نتیجه برسیم. ولی اگر اینها رو تشخیص ندیم نمیتونیم. لذا شبهات موضوعی که در احکام متقیل مطرحه در از این هفت ها تردید در میاره و اگه ما بتونیم مجرا اینها رو پیدا کنیم اینها در چه مواردی استفاده میشن مثلا مبدأ، و مشتق در چه مواردیه فعلیت و قوه در چه مواردیه حدوث و بقا در چه مواردیه اینها رو اگه تشریز بدیم خیلی خوب انگار شما یک دور کفایه رو خوندید یعنی خوب خوندید بله همه کفایه رو میکنن یعنی پیدا میش بعدن هم که بخواید وارد کفایی بشید آدم میفهمه که فایجی میخواد بگه و اله خیلی از موارد شراح بزرگ متحصید نکنم که میخواد بگه. مرحوم مرد جزائری در منتحت درایه در اون بزنگاه های حساس نتونست دردش کن بلکه اصلا برعکس کرده به خاطر این که خطوفم برده تو نیست ما بتونیم کفایه را همینطور راحت بفهمه یه فوت و فنی داره این فوت و فن به دست مفتییا میافته نه به دست محققین و مدرسین سر شخص باید مفتی باشه که این رسمت ها رو متوجه بشه وهاللا شخصی بخواد بیست دور کفایم بگه خیلی هم خوب بگه تا مفتی نباشه نمیتونه این معضلات متنش رو دربیاره به حلش کنه حالا کند تغییر شبهه موضوعی اینطوریه. اما شبهه مستاقیه شبهه مصداقیه قوامش به یک چیزه یعنی یک منشه داره همیشه هر کجا شبهه مصداقیه هست ما در یک چیز شرک داریم مثلا گفتن اکرم زیدن نمیدونیم زیدن نرغم رو گفتن یا زیدن نرغم رو گفتن نمی‌دونم. توتاشون هم هستن به کار کدومشه دو کدومشه کدوم زیده منشه شبهات مصداقیه یک چیزه خصوصیت ذات یا عمومیت انوان آیا ذاتی خصوصیت داره یا نه انوانی عمومیت داره کدومشه نه در این مواردی که زید مردد بین دو نفره حتما باید زید خاصی رو من اکرام کنم یا نه هر زیدی باشه مهم نیست مثلا اکلمت عالم نفتر عالم نخواد باشه چکار در این موارد؟ منشع شبهات مستاقیه فقط همینه آیا حکم روی ذات رفته یا روی انوان رفته؟ اگه روی انوان رفته سرپل وجود کافیه شما هر که کنید کفایت میکن گفتن کفاره بده، کفاره چقدر بدم و چیزی نگفتن شما هر کفاره برای استخفار ولی اگر روی ذات رفته باشه وقتی ما قاعد شده میگی وقتی میگن کفاره کفاره خاصی رو میگن نه مطلب تکفیر که با استخفارم سرپ کنه. خب حالا این حکمه وارد در خیلی از نصوص حج هم. که علیه کفاره، کدوم کفاره رو میگه؟ کفاره رو میگه یا کفاره انوان رو میگه که استغفار رو هم شامل میشه. خب اینو شما باید نظر بدید. ما میتونیم بگیم این کفاره کدوم کفاره است. کفاره بزن، کفاره ماه رمضان، کفاره قتل چیه؟ روایت نداره. فقط اسم کفار اومده ما اینو شبه مصداقیه داریم بر خصوص ذات خاصی هم کنیم که اونم نیاز به اینه که اون خاص رو ما برای تعریف کنیم وقتی میگن کفاره یعنی حداقل کفاره هنس نعزه باشیم یعنی ده تا مسکین به شما تعام بدید یا لباس بدید یا نه کفاره یعنی عموم کفاره و با استخفار باشه کدومشه؟ پس منشه شبهاتم استاغیه یک چیزه تردده آن، بین ذات و انوان روی انوان رفت یا روی ذات رفت فقه ما نوعا احکام رو رو عناوین میبرند. یعنی میگن عناوین که محبوظه به چه نقلیه رو عناوین میره الاحکام تدور و مدار الاسما که به صورت اصلاق فقیه از هزار سال پیش مطرحه که حکم روی از هامی میره رو عناوین میره ولی خب واقعیتش نیاز به تحلیل داره که آیا در همه موارد این یا نه بعضی از موارد این طوره. این هم شبهات مصداقیه که یک منشه داره شبهات موضوعیه هفت منشه داره شبهات مصداقیه یک مند شبهات مفهومیه شبهات مفهومیه چهار تا مند و یکیش تفصیم میشه به دو بست میشه پنج تا همیشه مفاهیمی که مشتبهه برای ما یا مفاهیم لغمی مدنظره یا مفاهیم عرفی یا مفاهیم شرعی که اصطلاحا بهش میگن حقیقت شرعیه یا مفاهیم عقلیه خوب اون مفاهیم عقلیه نادره در فقه ما اینکه نیست نادره مفاهیم شرعیه و عرفیه خیلی زیاده مفاهیم ادبیه هم مونده به نظر شما که آیا بعضی از موارد و حمل بر ادبیات بکنید یا حمل بر غرف بکنید اونم منوط به نظر شخصی که میخواد موضوع شناسی کنه. ما لغت رو نظر بدونیم یا عرف رو چون خیلی از موارد بین عرف و لغت اختلاف لغت یه چیز میگه عرف یه چیز دیگه لغت سلات رو میگه دعا ولی عرف میگه نماز زکات هم همین تو و خیلی از مقوله دیگه مثلا مقوله اف اف یا خب این الان اختلافیه بین لغت و بین قرط و شر اختلافیه در روایات زکات شما مراجعه کنید در روایات زکات یه دید مفور دیده میشه که پیامبر از شعن اسلام بر نوع چیز زکات رو جعل کرد و از بقیه اف کرد اف نیچی ما هنون معناشو نمیدونم این چیز بوده و پیغمبر برداشته یا عف یه معنی دیگه میخواد بگه بعد این عف آیا رخصت عزیمت اگه عف پیغمبر عظیمت باشه به غیر چیز زکات تعلوم نباید بگیر ولی اگر رخصت باشه چرا میشه به غیر نحچیزم ما قائل میشه حالا عف رو از نظر لغوی و عرفی به طرف عزیمت معنا کنیم یا به طرف رخصت معنا اختلافی اگر اختلافش معلوم نشه ما موضوع واقعی حکمو هنوز تشخیص نداریم و انهایی که رف مفاهیم عرفی بعضی از مفاهیم استعمالی عرفه و بعضیش ارتکاضی عرف ما استعمالی رو بگیریم یا ارتکازی رو بگیریم و این رو در باب انصراف شما پیدا می کنید. در باب انصراف میگن انصراف باید به استعمال برگرد. بنابراین اگر چیزی به ارتکاز برگرده به نمی و این فقه و اتفاق ما وارونش می کنید. ما ارتکاز رو بذاریم کنار بشه از که استعمال و استعمال کدوم زمان بعدا خوب اختلاف دومی می کنن اونجا اگر کدوم زمان رو بگیریم پس عرف خودش دو تا شاخه داره عرفیات مفاهیمش رو بعضی از موارد در لباس ارتکازات ارائه میده بعضی از موارد استعمالاته ما استعمال رو بگیریم یا ارتکاز رو بگیریم ارتکاز بر چیه؟ استعمال بر چیه؟ اگر کسی بخواد فقه خیلی خیلی فن داشته باشه باید اشراف تام بینا داشته باشه و اینا چیزهایی که خیلی از فقها در مقام افتا اینا رو ملاحظه میکردن مثل جام و که قوامش به همین ملاحظه همین عمومه که بالاتر از مباحث فقه و اصول وقتی میخوان عمل بکنن به این و فوا بدن بر نیان خیلی از چیزها رو ملاش میتونن که اینه اصلا اثری در کتاب های اصولیتش نبوده و این برگشتش به زوق اینا هست یه دارند، دارن ولو اینها مثل مواردی که میگن یدرک بلا یوسفه خیلی از چیزها هست ولی نمیشه بگی طلبه مستهدن به همین میگن یعنی یدرک بلا یوسف بلده ولی نمیتونه بگه خیل گفتنی نیست با گفتن منتقل نمیشه ولی با ذوق قابل درکه، درسهای حوزه باید ذوق رو تقویت کنه طلبهها ذوغ پیدا کنند تا درک کنن ما نمیتونیم معلومات فلشی به طلبها یاد بدیم فلش بکشیم فلش زغ درست نمیکنه و حقیقت فقه ما همینه یعنی ذوق و درکی وصفی نیست پس تا میتونید علاقه خیلی خیلی وافری به خصور پیدا کنید چه علاقتون بیشتر باشه درکتون بهتره و آسانتره خیلی راه ست سالا تو دو سال میتونید برید بعدا هم به کارهای دیگه میرسید ولی اگر این زوق رو پیدا نکنید شما سی چههل سالم درس بخونید در همون خم کوچه اولید و یه حقیقتیه قیل کار. ولی اگر شما ها پیدا کنید ذوق و خودش میبینیم پنجاه درصد مشکلات فقیده برای شما داره حل میکنه پنجاه درصدش هم با مباحثه و مطالعه و امثال اینها حل میشه و مشکل حل میکنه. لذا شبهات مفهومی برگشتش به این پنج قسمه حالا در مسائل متعددی که مطرح میشه یک مثالی من بگم نیاز به تحقیق داره. در رابطه با استحاظه استحاظه اختلاف اعلام در اینکه این بگیم استحاظت المرعتو یا استحیذت المرعتو اختلافی. در کتاب های دوباره هم اختلافه میشه بگیم خب. در نصوص هم هر دو استعمال شده فقها هم استحازت رو مقدم کردن بر قصدوی زد ولی یه واقعیتی هست با اون اینکه که بر دو قسمه استحازه بر دو قسمه یه استحازه تعبدی داریم یه استحازه تکوینی واقعی داریم استحاضا یا یک خون تکبینیه یا یک حدث تعبدی شرعی کدومه مثلا در قاعده امکان حیث از نظر شرعی اگر کسی این قاعده رو قائل قاعد باشه که ناتمامه ولی مشهور منتظمن بهش که میگن هر خونی رو به شما حیز حساب کنیم حیز. حالا یا قاعده تامه یا نتمامه در قواعد بخیه بشنوردی پیگیری کنید. کنیم تسالم برشست بر این قاعده شهید ثانی هم به کترات در شرح دومه در مساله آورده و خیلی ها معتقدن حالا اگر کسی قایل قاعد به قاعده امکان حیز بشه مشکل در خیلی از موارد حل میشه یعنی هر خون مشتبه در صورت که امکان هیز درش باشه محکوم به هیزیت نه به استحازه ولی اگر کسی قائل به عدم تمامیتی قاعده باشه قاعده امکانه هیز رو بگه ثابت نیست در این موارد ما ناچاریم در خیلی از موارد مشتبه تشخیص بدیم دیمای هست یا نیست استحازه رو یک قسم بدونیم و اون یک قسم رو تقسیم کنیم به قلیده متوسطه و کثیر یا نه دو قسم بدونیم و یک قسمش تقسیم به اون سه قسم بشه یک قسمش هم تقسیم به دو قسمش هم کدومشه؟ بنابر که ادبیات میگه استهازت تلمرم داریم استویزت هم داریم یعنی بعضی از موارد استحاظه حکم تعبدیه شاره میگی این زن استحازه است. بخواد این که حیزش تمام شد در روز تمام شده دیگه دیگه روزی یازده اون که ما نمیتونیم اینو بگیم باز حائزه استحازه این بعضی از موارد استوهی زدت مره یعنی قهریه قهریه ازایی اختلافی اعلام دارن در اینکه خون خونه یک خونه قهریه یعنی یک فعل انطالاتی در بدن زن اتفاق میفته یا نه یک حکم تعقلی صرفه کدامشه استهاده را میشه دو قسم بگیم استهاده قهری هم داریم استهاده تعقلی هم داریم و بحث مفصلش در محل خودش به عنوان مثال می‌خواستم بگم که بین ادبیات و عرف و شرع میشه بعضی از موارد تزارب باشه بین آرام قرارن استهوازت رو با استوئیزه چرا لغوی میگن هر دو استعمال شده بخواد میگه استهوازه بر دو قسم و البته مگه میشه عرب بیاد بگه ما استهوازه استهوازت استعمال میکنیم شما مجبور استعمال کنید تو چیزی که نمیشه چون دو قسمه دو نوع استعمال میشه نه شاره حکم رو به استحازه میکنه ولو هیچ خونی هم در کار نباشه تعبودی هست تعبودن محکوم به است. و ولی هیچ خونی هم نیست و اون اوصاف زن رو که میگن سرد باشه زرد باشه،, باشه سوزش نداشته باشه اینو در تعبودی میداخت بدونیم یا در قهری میداخت بدونیم خب یقینا برای تشخیصش یه مبانی جوهری میخواد ما این رو بتونیم تشخیص بدیم و یک ای که استحاضهی تعبدیه در این نه سوزش نه سردی خون نه فساد خون هیچ خدا همش نظر نیست این حکم مطلب و اگر قهریه باشه چرا؟ اگر قهریهش باشه ما باید اوصاف را آیت و مثال های دیگه این نسبت به شبه مفهومیه برای شبه ها تقسیم میشن به این چهار قسم و باید تفصیم میشن به این چه حال یک مطلب دیگه برای تطمیم این مطالب و اون اینکه بعضی از موارد انداره میشه بین این که ذات مد نظر باشه یا انوان یه معیار برای تشخیصش هست یه معیار قالبین مثلا اکلم زیدن با قلب زیدن یه میشن ذات مهمه یا عنوان مهمه شاید کسی بگه تقلید خوب تبقیه زندگیتی که پیدا کردیم تبلید ذاته و اکرام انوانه این ذهنیت هم نباشه دلیل دیگه نموشی دلیل فقی میخوایم برش نه فقط ذهنیت فقط دو ذهنیت نباشه نه یک دلیل متقن و قاعده میخواد برای تشخیصش ما در چه موالی حمله بر ازاد بکنیم در چه موارد حمله بر انوان موکنیم قاعده قالبیش حسب استقرام اینه که در هر موردی نس در, در مقام بیان تکلیف باشه انوانیه در مقام بیان وضع باشه زادیه حکلم زیدن تکلیفه میشه انوانی قبل زیدن لزئیه. تکلیف نیست یعنی از که من مجازم تقلید بکنم و اعمالم صحیحه نفوظ اعمال و صحت اعمال به چیه؟ به تقلید از زی، چون وضعی رو داره میگه نه تکلیف رو نمیگه واجب از زهین تقریب کنید نه در صورت اعمال شما صحیحه که از زهین تقریب کنید تکریب را نمیگه وضع میخواد بکر یعنی مناط صحت اعمال شما به تقلیده بدون تقلید اعمال باطله بدون شبهه کمالی ما علیه ناینیم قلت زیدن وضعه اکدم زیدن تکلیفه قالب موارد وضع میشه ذاتی قالب موارد تکلیف میشه اینها این بعضی از وقت شاید ده ها سال آدم زحمت بکشه اش نرس هزا مختنمه آقای اینها یه مقدار تعمل کنید راه و ثمرات زیادی در پیش دفت آقایون خواهد داشتن شادم اگه بتونید براش ندیر پیدا کنید وقت بذارید این هضم حضم بشه این فیل در رابطه با تنقیه این مطالب و شبهات چارگانهی که هست و به این نحما گفتید <تصفيق> بل این قاعده است این قاعده است گالبی هم گفتن چون استقراییه من خودم کسی تذبیل نداشته میگم شاید یه موردی چیزی پیدا بشه بخنا ولی ها خودش قاعده است نمیتونیم دیگه نمیدونیم از اونا باشه از این باشه یا این یا این معنی که یا خصوصیت ذاتی. یعنی میخواید این در... شبهات مصداقیه نوان کجا هم پیش میاد در اموال که ما در اصل اینکه حکم ذاتی باشه عنوان باشه شک داریم و شک نداشته باشیم شبه مصداقیه نداریم نوع شبهات مصداقیه برگشتش به اینه ما اصل ذاتی بودن و انوانی بودن رو تشخیص نداریم الان در همون هدث زید و که معلوم به اجماله ما اینا رو محکوم به حدث بدونیم یا ندونیم چرا شک داریم در مصداق هدث الان ما شک داریم چرا؟ چون نمیدونیم قائمه به هست یا قائمه به نیست از شبهات مصداقیه برگشتش به اینه که ما اصل حکم الان نمیدونیم حالا الاهون که برای حل و که شده این چالش بود، شما دستور خوبی باشه. که فقط درش عنوان نه شاید فرمایش شما اینه که شوباهت مصداقیه آخرش برمیگرده به احکام متفقی. این که میوفته. یعنی من به شک دارم، حکم ذاتی یا ذاتی نیست در موارد شوباهت مصداقیه چی بگیم؟ بگیه منوانی یا ذاتیه علل قائله واسه اینه منوانی شما این می‌خواید دو بار ما قبلش این بحثا رو مطرح کردیم در یکی از شبهای مصاحبه رو براش منشه گفتیم در بار اول هفتا جا اینا تجمی شده به خودم مراجعه کردم به خاطر این قبلا گفته بودم اونها مثل اول بعثت میمونه اینا مثل آخر بعثته فرق داره یعنی آیات مدنی با مکی فرق داره سرگه جمیل اینا خیلی پخته تر و بروزتر و روان قبلا ما یعنی در سیل بحث خیلی پلده ها رو مراعات میکنیم برخلاف برداشتی که وضعی دارن نه من کاملا پلهها و مرافق رو مراعات میکنم اون روز اولی که ما رفتیم شرح لمعه بگیم تا دو سه ماه ما پای تخته بودیم فلش میکشیم بعدا کم کم نشستیم این که رایت نکنیم بذار این دوره ما برخلاف برداشتها تکرار دوره نیست ادامه دوره سابقه ما پار سال اگه یادتون باشه با باعث به عنوان ذات رسید دیگه امسال همون ادامه داریم یعنی یه نوع محالطه هم هست خودش حالا اینشان ما میکشه مشکلی پیش نمیاد سعی میکنیم روون گفته بشه که مطالب حزن بشه ولي اگر اناو کسی حضن کنه دیگه مشکل نداره که ما در هر چیز نیم بگیم هغو عرف ین طور عرف عرف تون که مشکل پیدا میکنه یکی عرفو میگه یکی قبول نمیکنه یکی انکارش میکنه یکی میگه کدوم عرفو میخوای خای بگي اینها های کاملا سوری و عقیل هیچ مشکل رو حل نمیکنه ما مراجعه به عرف میکنیم کدوم عرف عرف چی میگه عرف دو تا فقها دو تا از فقها میگن با هم دیگه فرق داره نمیشین هر پا رو یا ببین بگیم در این شئی این صادقه در همه این هر رو که نمیتونیم بزنیم هر مطلبی به نظر میرسه که دا خودشو داره حالا نظر قاصر ما اینه هم. نظر قاصل شما چیه؟ اونو خودتون می دونید حوصله می یه مقدر حوصله باشه اون ذوق حاصل بشه مشکلات هم نه اونهایی که به این حرفها گوش نمیدن ما هم بحث داشتیم در لومه که اونها این حرف ها بعد بعدها خودشون چرتفت شدن کسی اینها را قبول نکنه فایده نداره به وقت بذارید اون آقا تا ساعدی 11 میخوابید تا 11 میخواب دو ساعد 3 صبح میرفت کرده پاچه میخورد قبل از قلیان شینای ناک یعنی که نکبتی بود برا خودش متصف هرچی هم میگفتی فایده نداره به موقع بخواب کرده پاچه مالا آق خونه نیست اونم بری بیرون بخورید بعد به راضی به راجی قریان کشید تو همین نوجه های مزید. ساعت سه صبح میرفتن کلده پاسچه میخوردن میومدن یه طور بخوابن که نماز صبح بیدار نشه. ساعت یازده پا میشد من از درس میولم اینجا بای ساده کنابی کتاب خونه بود داره چشمه باز میکنه یعنی گربه هایی که چشمه باز میکنه بعد آماده میشد برای صبحانه <تصفيق> صبحانه رو میخورد بعد میشستم باز و فتق امور و تعدیل و تجریح و جر و, کی و کی خوب و کی بد و کی این داره کی نداره و مشکلاتی که همه ماها گرفتارش ساعت تا ساعت باز چهار پنج میخوابید اون موقع که پا میشد آب گوشتش دزیده بود اون نهار میخورد. در, میخورد در صبحانه رو میخورد. بعد یک کتابی داشتی نوشت این میخواست از در... القدیر استفاده کنه القدیر رو نمیتونست بخونن من دو سه بار رفتم موجهاش کار داشتم دیدم درو در میبنده با که تا در میزردن که های جمع کرد در رو باز میکرد من فهمیدم بهش گفتم ما با اینارو رو بیار من برای ترجمه کنم این ترجمه خوبی نیست گفت نه من کار باینا ندارم. بعدن این کتاب رو بگم ترجمه‌های غلط منتقل کرده به کتاب رو، خودش کتاب خودشون بعدن دیگه مجوز چاپش ندادن و فقط یک دور چاپ شد اینطوریه یعنی آدم که نخونه وقت نظاره هی بخوره و بخوابه هی بشینن رو نظر نظر کنه فایده نداره آدم باید سرش بندازه پایین بحث و مباحثه و مراجعه بقیه اش که با خودشه حالا ان این مقدمه تقسیم سوال و تفسیدش فردن شد حالا فردا از هست یا نیست <ءه> آقایون کیا میخوام برن کربلا نمیگه آقایون میخوان برن یا میخوان استراحت کنن ما مانع نشیم پس هستن همین آقایون فردن سلام علیکم. چرا؟ شما عرض میکنم که ولی همه شما رو کمی. یک که تعریف Thank you.